ای کاش با ما به بندر لنگه بیاییم از آنجا به جزیره کیش خواهیم رفت می دانی که خیلی دوست دارم بیایم اما وقت کافی ندارم سفرتان چند روز طول می کشد؟ حدود هفت روز ما با ماشین به بندر لنگه می رویم و از آنجا با کشتی به جزیره کیش سفر می کنیم. مطمئنم به شما خیلی خوش میگذارد ممنون من سفر با کشتی را خیلی دوست دارم این اولین تجربه من است بله سفر با کشتی عالی است ماشینتان را کجا میگذارید؟ ماشین را هم با همان کشتی به جزیره کیش می‌بریم. چه خوب پس با کشتی بزرگی به جزیره کیش میروید بله شرکت کشتیانی ولفجر کشتی های مسافرتی زیبا و بزرگی دارد با این کشتیها به سفرهای خارجی هم میتوان رفت؟ بله ولی فقط به کشورهای حاشی خلیج فارس مثل کویت، بحرین و امارات آیا از دریای خزر هم میتوان با کشتی به روسیه سفر کرد؟ نه، متاسفانه فقط کشتی های بین ایران و روسیه تردد میکنند